Aber wie im Nach福elgas این پروتکلی که پیش دارا داشت بود ها؟ اون از اون طرفه که بچا یه حرف میده و این اینجوریه که اگه به من یک خاشته مخوام بهتون بگم که یک نکه دو رو هم توی از شهر خیلی هستی که از زنی از زنی که سفر میشه بهتونه دو دنک که بکنی بردی به این که برد که و یاد باوریی داشته بکنیم مصاله بایدی شفتی NH آنوه بیجو آسن ویگه صورت Bruno یک آن را آر Release شفتی Sergeant آمرف هات لا kasih کوき اید آمرف همоны um فخیب یا رفع و بود به آبی کنیم وی، کاموی، کاموی، آنها دور بیگان آل آنا آمی، آنها قبل مقدس، به آبی کنیم، آبی، قبل من داوری بهشیم. اگر آنها اول، اول اول می‌نویسند نه اول می‌نویسند. نه اول می‌نویسند. نه اول می‌نویسند. نه اول می‌نویسند. نه اول می‌نویسند. نه اول همه از هم با آن مالان اون دمیر کجا بوده؟ برداشیم به سهل حسنه به چیزی بود حسنه به مردی که دیبا بوده برداشیم این این این تا ان در درنی 1 تا ان تا ان و ان در وقت پیش وقت عام المدری تا ان در لحظه این وقتی گفت غروب به او غروب به کفت نمیستم می‌دونی یا اونجو هره رو بکنیم یا اونجو یعنی اگر ما اینجا جرم در چی می‌کنیم؟ رو کنیم و جل الحسانه بگیم الوش خورد الوش خورد یعنی اگر جرم نبیم رضاقه نبیم این بعد بعده از خوبه خالی میشه چی؟ قبیل یادتون از صبر بعد مشابه قبیل بود چرا؟ چون دارای سمیر رابط علت ظاهر بگیر نبود که چی میگفتیم؟ میگفتیم یا علف نام عوضشه رابطه یا بوده علوت چه ها بگیر؟ منحو یه منحو تقدیر میگیرد سمیر خب این دیگه که ما بیایم مجبور باشیم صفتمون رو براش رابطه تردیری گیریم قبل هر خلوه به صفت منظمی یعود علم بخون ظاهرن ظاهرن هم بگیم سیم که ظاهرن خالیست ولی باطنه یا علف رابطه یا منه در نمیگیم خب نصب بگیم چی بخونیم مرر بر به رجل الحسنه البته هر منصوب بخونیم میگه وقتی نصبهی و در نصب دادنش قب هر قبح این هست قبح اجراع وصف قبح اجراع قبح اجراع وصف قاصره مجراع وصف متحدی وصف نیچی سفر مشبه مشتق مشتقی رو که از فعل لازم گرفته شده ما اگر بخونیم البچه ها جاری مجرای چی کردیم وصفی که از فعله متعدیقه فعلش نمیتونه نصف بده اما صفت مشبهش اومده چیکار کرده نصف ده این قبیهه که وصف جلوتر از اسمش بشه قبل اجراع وصف فعل قاصر مجرا وصف متعدیقه وصف جره وصف جره تخلصون در جر خلاصی از این تا هست یعنی اگه جر بدیم رابط داریم زمیر داخل علحسن و دیگه قبیه هم نیست قبیه هم نیست نه خوبه اینو داره که مصر لازم رجالی مصرهای مصر متعددی کرده باشیم نه خوبه اینو داره که صفتمون زمیر نداشته پس بنابراین غیر از تخفیف در این عبارت که زمین هز شده و جاش علف نا آمده غیر از تخدیف قب همچیه ازاله قب هم شده. ازالت رو قوبه. این ازالت رو قب این رو, رو اینجا نگفت ما برای تو چه کردیم؟ انوان کنیم کرد. البته تو انجهد و شهر میشه اینو استنباد کرد انجهد و شهر میشه استنبادش کرد ولی به این شکلی که ما گفتیم داشته باشید رو و با که اونو ها و کونها فلوصف کافن این وقع موسنن او جمعن سبیل ده خود تبع و کونها فلوصف کافن این وقع موسنن او جمعن سبیل ده خود تبع واظوا به آتفه قبلشو نگاه میکنیم و وصل و علب زلم و موقتبا این و سلط بستانی کرد جهد شهر مقدده قبرش این هم همینی و کونها این کون ممکنه که مستر کانه تام باشه ممکنه مستر کانه ناقص باشه اگر مستر کانه تام باشه کونها میشه مقدده ها فلوست متعلقه به کون یعنی وجود و ها فلوسته ها میخوره به هدفلام یعنی وجود هدفلام در وزف وضع یعنی چی؟ مضاف مشترک اضافه نفسی رو میگه و بودن الف لام فقط در مضاف در اون مشتقه کافه که باید یعنی دیگه در مضاف الفلام لام لازم نیست ان بقا او جمعن. اگر واقع شود اون وقت تضیئه یا میشد بگیم از زار یا نمیشد بگیم از زار با زیدن بگیم ولی از زار با بگیم درست. از زار بو بگیم مضاف اگر علف الام داشته باشه و تصنیه و جمع باشه مضاف ندهیه شرطی نم داره او جم هم بگیم هر جمعی میگه نه جمعن از سبیله جمعی که رفته باشد تبعیت کرده باشد سبیل تصمیه با. سبیل مسندان تصمیه همیشه سالمه زید میشه زیدان تصمیه مکستر بگی نداری، جمعی که راه تصمیه رفته باشد یعنی چی؟ جمع مکستر نباشد جمع سالمی باشد چون تصمیه همیشه چیه؟ سالمه مکستر اتبعه فیل زمیر فائلش که به جمع می رابط جمله صفت به موجود سبیله هون مخلوم سبیله جمله اتبعه سبیله هون می شه صفت این فائلش که به وصف می حال هست از باره فائل او جمعه از تو به این وقعه فیل شرط این جزای شرط قرینه دلیل الجزا که قوم و حافل باشه چی شده؟, شده. یعنی این وقعه اگر واقع شود مزاف وصف در حالی که تصمیه و جمع هست اونم جمع این که راه تصمیه رو رفته و سالم است پس بودن علف دام در مضاف در وصف فقط دیگه در مضاقون حالا اگه کونه ها ناقص ما چه چی میشه میگیم کونه ناقص اضافه شده به ها اسمش فلوصفه متعلق روی صحابتتن موجودتن چیه خبرش یعنی بودن الفلام در وصف فقط کفایت میکنه اون موقع کونه ها دوتا خبر میکنه یکی خبر میخواد از جهت نقصش که میشه فلوصفه متعلق به صحابتن یکی هم خبر میخواد از جهت اینکه شده چی؟ مبتدا آه؟ یکی از جهت تجزیهش میخواد که خود کلمه مستر ناقصه مستر پیده ناقصی اش مخبر یکی از جهت چی میخواد؟ ترکیبش میخواد که دون این جنبه چی شده؟ مبتدا شده نیاز به خبر داره. کافر میشه چی؟ در واقع فلوست میشه خبرش از جهت نقص کافر میشه خبرش از جهت آه عجیت مرتبا شده بیش بیاییت باید و کونها ای عل مخاطب یکیز نمید رو خواله به فل فلوصف فقط در وصف به تنهایی فقط کافی که باید این وقه ها اون وصف مصندن نهو مرد تو به زار بی زیده یا حتی نکله باشه به زار بی رجاله برقی دیگه حتی مدخولش یعنی مزاقونه رقیش نکرمن باشدش کاری دوش او وقع جمعن یا واقع شود از جمع جمعی که سبیلهو یعنی سبیل در مسننا زمین میخوره به مسننا اتبعن میگیم چجور میشه سوید موسن بره میگه به انکان جمع از هرها به این که اون جمع ما جمع سالم باشه نه رو مثال مرر تو به زاربی زیده و بی رجبه درسته؟ پس علف لام اگر بر به تصمیه یا جمع داخل شود مزاخن علی به شرطی ولی اگه به مفرد تاخل بشه مزاخنه لکه شرط باید یا الافلام داشته باشه یا اضافه شده باشه به الافلام یا ضمیری باشه که برگرده به محلای به چرا شدید اینجا جا به خاطر استطالت بلندیش یعنی به خاطر بلندیشه که اینجا نمیدون حالا این دیگه اینجا فقط حفظ کنید که مرحلهش که درسید. و رب به ما بگن اینجا اجازه بدن نون هست بشه به خاطر استطعالتش چون کلمه بلند می شده هزاربان زیدن, زیدن گفتن بزرگ بیده به هم اتصالشون دنن شفت کلمه شدن شفت یک کلمه شدن نون هم هست شدن کتاکش و ربما اکسب سانین اولا تنین می و تذکر یکی دیگه از چیزهایی که مضاف از مضاف اولایی که هست میکنه چیه؟ کسب تنیس یا پس که این که در کتاب و روبه ما واقعا رب روبه حرف جرم ملغا ما ما کافه ملغی عمل روبه رو جلوش رو گرفته وقتی عملش رو جلوش رو گرفته دیگه عمل نمی کنه لزومی هم نداره دیگه به اسم داخلشه میتونه به فعل داخلش فعل هم دامش. برای فیل ماضی داخل باشه لفظن و معنم یا معنم تا اکسبه چه بسا اکسبه سانه اکسبه یعنی چی؟ به کسب دهد یعنی عطا سانه اکسبه فیل سانه فاید چه بسا به دهد دومی یعنی مزافن رک اولا یعنی اسم اولا مقبول اول اغلب است. و اول در مقابل ثانی باشه چیه؟ مؤنث. اولا تانیثاً مقبول صاغیه اغلب است. یعنی چه بسا بدهد مضاف الی مضاف را تانیث را وقتی تانیث رو میده تذکیر رو هم مثلا میده یعنی اجازه حذف بده تانیثاً و تذکیرا این کانه این کانه لحظفن موحلا موحلا یعنی احلا مستحقا این کانه اگر باشد اگر باشد چی؟ اون مزاق زمین داخل کانه نمیخوره به مزاق موحلا یعنی اهلا مستحقم خبر کن است لحظ به این مطلقه به مطلقه اگر باشد اون مضافه ما مستحق بگید از شدن یعنی اگه مضافه رو از کنیم مضافه رو نجاش بذاریم معنا فرقی نکنن معنا فرقی نکنن یعنی موقع فوقش مثلا از حقیقت تبدیل به مجلس میشه پس شرطش هم این شده بریم باید. برای این کانه کانه میشه فعل بشه. مثل شعر باده جزاائش حد به قریده دلیل الجزا چی شده از شده یعنی امکان لد حسب موهلن و ربما با اکثر صانن اولا تانیسان او تذکیرا و ربما با اکثر صانن اولا تانیسان و, و تذکیرا امکان الاولو میگه ضمیر داخل کنه می به اول یعنی مضاف لد حسب موهلن یعنی چی یعنی اهلا یعنی مستحق یعنی جدیرا شده نه رو مثال و تشرق بلغول لذی قد ازعته کما شرق و صدر و لغناطه مردده در کتاب سمدیگه بود و توضیح هم شبه. میگه و تشرقو شرق و یشرقو یعنی انسان آبی بخوره و این آب در گلو به راه تنفسی او بره انقدر صرفه میکنه تا این آب را گروب اندازه گروه براحت میشه دیگه گروگیر میشی تشرف و بلغول به گفته ای که بلغول الگلزی به گفته ای که بد از تبید یعنی قد عبشه ای یک شایش کرده یعنی یک حرف که تو دهنه تو هست مثل اون آبی که در مزرهای تنخوصید باشه زحمت داری تا این که این حرف رو چکار کنی؟ بندازش بینو حرف رو تو نمیتونی نمیتونی حرف رو حفش مجبوری که بندازی بگیر تشراق و فعل تا فاعلش بلغول متعلق به تشراق اندازی صفت قاول قدع از اتفو فعل و فاعل و مفغول مفغولش آیده کما شرقت هر کز کما بیاد این طرف بود این طرفش به یک لفظ و یک معنا باشد اون ماشمای مصدری است و خود کما یعنی تبدیل به مصدر میشه مفعوله یعنی تشرق و برقول از قد اعظته اون شرقان مشابهان متعلق شرقان مشابهان که شرق صدر الغنات میدن که شرق صدر الغنات میدن ولی درسته کما شرقت جای مظبول مطلق شرقت به صدر الغنات پایدش صدر مذکره بیدید جز اعضای فرق بودن امسان مذکره ولی اینجا ببینید فعلش اومده چی؟ شرقت پس معلوم میشه که سمت از القنوات کسبه کما شرقت سدر القنوات قنات یعنی روم نیزه نزارونه مناتم متطلب رو شرقت همونطور که نیزه سینه به خون گروجه میشه چون اگه مثلا شما یک چیز خیلی ردی آب غیر بریزید بالای نیزه ممکنه خیلی بیاد کنه سدر نیزه سدر صافی ولی اگر خون باشه یک قطعه دو قطعه خوب که روی سینه نیزه یک سانت که میاد پایین چی میشه؟ پشت میشه و میمونه و به طرف پایین میگه مثل سینه نیزه که خون برش مییسته و به طرف پایین نمیاد قول هم در دهان تو. کم آشره خط قنات الان صدر نسبت به قنات چیه؟ جزءش ها صدر قناط جزی از کل قناط دیگه یعنی اگر ما بیاین چکار کنیم مضاف رو حذف کنیم کجا حذف کنیم بگیم کما شرع قتل قناطو بنزدمی معنا فرقی نمیکنه اونی که مال جزئه نسبتش بدیم به چی مجاز. و چیزی که مال جزئه اگه نسبتش بدیم به کل میشه چی مجاز و کلمتون با حالی کلام و قضیان گفتی گف کل و گایقات به اسمه جذعش رو هم منامم عکسش هم بود جذر رو به اسم کلدش مینامم مثل جعل و نعصاب و بی آزان منظور از اعصابه چیه انامل گفتیم اینجا هم کما از صبر و جناز اگه صبر رو حذف کنیم و مناظره بزنیم جواز میشه چیزی که مال جزءه نسبت شدیم به چی فا عکس تبع که قطعو میدون فا عکس تبع ال از صدر علی مذکره از همی صدر پس داده است تناتی که نیسته رو دارد مهنمس است داده است به به صدری که نیسته فضل دارد مذکره است کی رو داده همی صدره شده, همی صدره شده. همی صدره شده. همی صدره. لما خوزی فا علی به خاطر اضافه شدن به خاطر آنچه که اضافه شده است. صدر به سویه وظیفه ضمیرش یکی می‌خواد به صدر، الای می‌خواد به سوی او، به آنچه به ما. که منظور چیه؟ به خاطر مضاف و که صدر بده به سوی او اضافه شده. مضاف و نایبی صدر به سوی اضافه شده بدونه. اما. و نهرو. و نهرو رؤیت اول به چه ما یعولو لحول عمر ما یعولو له عمر مؤینون علت کنابه مؤینون علت کنابه توانی به جایی دیشه در کتاب سمجیه چه شیعه مثال انارت انارتو لعقله به تو هوا و عقل و آسل هوا از دادو هم میره. گفت انارتو لعقله مکتوب بایدو گفتی مکسوبتون پس اناره از العقل چه کرده کس به اینجا میگه رعیت الفکر رعیت فکر فکر مذکر رعیت چیه محنی نظر رعیت از اضافه شده به انفکر ما یعون اون شد ما مفهول رعیت یعنی دیدن فکر آنچه که ی اوور را دهور ام که الام. آن چرا که امر او به او دیدن فکر آن چرا که برگشت کار به یعنی کار ما مفور بایدت یا از عاد او یا او رو دهول رو برمیگرده به ما. کارها حال فلان چه حال دیدن فکر انسان آن چرا که او می کنن به سوی او کارهای او این انسان بتونه آقابت رو ببینه محینون باید بگه محینون یا محینتون محینتون چون رویت مقتدار مهننسه ولی گفته محینون پس رویت از الفه کسبه چی کرده؟ تذکیر کرده محینون الاجتناب توانی یاور از بر اجتناب کردن از چی چی؟ توانی سستی آه؟ من آینی یعنی سستی کردن بر اجتناب از سستی چیه؟ این سستی. یادت سستی الاجتناب تعلق است به محین رعیت و فکر ما یعود و لحول امرو مهینون الاز سناب ثمانی فا اک سبه خود درد فا اک سبه الفکر المذکره و اک سبه الفکر المذکرو. پس داده از فکری که مذکر است از ال رعیت مهندس هست رعیت مهندس رو از تذکیره مذکره بودن امروش رو داده بود چرا؟ لما اوزیف ایلایه لما یعنی لذیف اوزیف از زمینش مخانه به رویت لما اوزیفت ار رویتو الائه. به خاطر آنچه که رویت به سوری اوچی شده اضافه شده که عبارت از فکر و ملذیف مل اوزیف ایلایه ها از میگیم شما یه قید هم توی عبارت داشتیم امکانه لحظ فیلمون که بله همون قید اینجا هم باید باشه الان ببینید من میگم دیدن فکر آنچرا که به سوی او برمیدن هم. حالا اگر رویت حظب چه رویت دیدن لازمه چیه فکر دیگه اگه شده که ما لازم رو حظب کنیم ملزومش رو جاست بذاریم نیشه مثل که بس تو که ما به جای که بگیم که حرارت خرشید ما رو گرم کرد میگیم چی؟ خرشید ما رو میشه که لازم حض بشه و هم به جاش بکار مثل انارت رو عقل انارت رو در عقل کن. یعنی چی؟ یعنی روشنی دادن و نورانی کردن عقل مکسوب هست خودش را یعنی روشنی داره. دادنش چه درس یا میتونیم تونیم بگیم علعقل چی مکن یعنی ببین خود عقل مکن تان همینطوره یعنی میتونیم مزافت مضاف و لازمه هست دیدن لازمه ی فتوزه عقل اونو حذف کنیم عقل شده میگه امکان ال حسب یعنی یک ارتباط مجازی مثل حسب لازم اومدن و آمدن مفعول مجازی یا جزء بدن و کلمه منجاش وجوب داشت امکان ال حسب موحدن مالیس خرجه به ونهی ای مالیس اهلند اون چیزی که اهل برای حسب شدن بگید نیست میگه چطور حسب شدن رو اهلش نیست میگه بهنگختل للکلام و اوزه به اینکه که کلام ما مختل میشه ها نارسا میشه به مخصول ما لوحو زفه اگر مزافه ما حضر میشه فلا یکسه به هو مازو کرن فلا یکسه به مزاف هو یعنی مازو کر چی؟ مزاف مزاف یکسه به فایس بزن مزافه به مزافه هو رو بزنید به مزاف فلا یکسه بود المزاقه لنگ المزاقه ما زکرم آن آنچرا که زکر شد مخبول سانی یکسه یعنی همیس از در نتیجه نمیدهد مزاقه لنگ به مزاق آنچرا چرا که زکر کرد یعنی مزاقه رو محرمش بود مثل چی؟ که قاما غلام و هنده قاما غلام منظور گوینده چی بوده؟ آن؟ اینه که قلام هند استاد قامت قلام و و قامت امرعت و یعنی استاد کی؟ زن زید اینجا نمیتونیم بگیم قلام از هند کسب چی کنه؟ تنیست کنه و بگیم قامت و در دفعه امرعت از زید کسب تذکیر کنه و بگیم چی؟ قامت نمیشه به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر شما بگیرد قامت, هند، قامت هندون قدام رو از کنید یا بگیرد قامت زیدون یه جمله جداییه اونی که شما داشتید دیگه مورد قصد نیستید ما گفتیم شرکش اینه که مضاف رو حضرم کنیم همون معنای قبل رو بده ولی نهایتش فوقش اینه که اونی که ماره جز بوده نسبت داده میشه به کلیم مجاز شرقت صد رو الگنات صد رو حذفنی میشه شرقت الگنات اما اینجا اگه حذفنیم یک معنای کاملا متباینه با معنای قبل نقطه سرخند ببینید گفت مضاف از مزافره نی چه چیزایی رو میتونه کسب کنه تری تخزیز تخفیر او رفت پور. تحریف و تخصیص مال اضافه معنوی و تخفیف و رفع قبل مال اضافه معنوی البته در اضافه معنوی هم تخفیف هست تشکنگین هست میشونیم هست میشونیم هست پس بایده قصد قصد اون تحریف و تخصیص در چی؟ تذکیر و تنز شیش داره بود. بیش از این ششتا هم هست دو جایی مثلا باز بکنم که ما داریم که لا تنیلو کل علمه کل از علمه کسب مستریت گرد شده چی مفهولا؟ مفهولا لا تنیلو کل فجر دو هم نع تجردت نع مفهولا سی علمون لذی نظرمون ایمون غلبن هیمون غلبون هیمون غلب مسترمی کسب مستریت جای کسب ضربیت میکنه مثل تو اتی او کله ها کله هینه. هینه تو اتی او کله ها کله میدهد خوراکی خودش رو هروند کله الان ظرف از متعلق ده ما با باید زمان یا مکان باشه میگه اینجا کل از این کسب چی کرده؟ کسب زمانی و چیزهای دیگه که بطور متفرق به این باب کاری رسید، هر کجا رسید باید بیاریمش اضافه کنیم به اینجا. 11 تا چیز هستش که مضاف از مضاف ل پس ما 6 گفت. تا من گفتم دیگه اون ستای بعدیش به جاش مبزید. یکی دو تاش رو همین باز باب زان باب همزه اسم لما بهی معنن و ما و اول من اضافه ولا اضافه یعنی چی؟ و اضافه کرده نمیشود اسم اسمی لما بهی اقتحدا معنا به آنچه که با او از نظر معنا چیه؟ مطمئن یعنی هیچ اسمی به مرادف خودش اضافه نمیشه. لما بهی اقتحدا معنا اصلا نرسیده میگه چرا؟ رسیده اون جاهایی که رسیده باید تعبیر دو اول بوه من یعنی بوه من زالکر تعبیر ببر به بعدم اندازنده این را یعنی هر کلامی که به بعدی اندازد این رو خودمون دیگه اضافه شده اسم به هم معنای بده اضافه رد یعنی اگر بنویسه اضافه رد یعنی اضافه رد به این کلام العرب از موضوع به در در کلام عرب هایی که قولشون رجته اگر یک زمانی رسید یا همچین چیزی شما چیکارش کنیم؟ مثلا تو قرآن تو سوره یو صدت و ندا رول آخرته خیرون ندا رول ظاهرش اینه اینجا که دار همون آخرت و آخرت همون داره آه؟ اضافه محصوف به صفت ده. دیگه صفت محصوف هم یه چی و فصلی میگنیم هیچ کارش کنیم تحبیل داریم بگیر دار اضافه نشده به آخرت دار اضافه شده بوده که از ساعت یا انحالت بود لدارو لحالت لآخرت بعد موضوع افتاده صفت اومده جاش حساب اگه به تفاصیل دقیق مراجع کنیم لدارو لآخرت های نشته. ای لدار لدارو ساعت لآخرت لدارو لحالت لآخرت واسه خاطر چی؟ واسه اضافه شده به نفس؟ و لا یوزاف اسمون لما بهی اتحاده و عقل مهمن ازابرد لا یوزاف اسم اسمون نایب فایل لما متعلق دام به لا یوزاف ولی به معنای اله چون از آفه یوزفی را چونو تدیم شد؟ اولا بهی اتحاده اتحاده فیل زمین فاعل و آهد بهی متعلق به اتحاده معنام تمیز متحد است با او از چه جه از جهت معنا حمیز از نسبت است نسبت‌ها از ایدن برسر معنا و عبل با باب, باب استناد میاست چرا چون جنب قد جنبه اخباریه و عبل بودن ازا بردد عبل ذمیر فاعل انتر گوگلن مفعول ازا بردد اضافه ازا از ادات شرف بردد ذمیر زمین است این ورده فیل شرط جزای شرط به قریمه افرم چی شده؟ نه که اون جزای شرط ناصر اضافه همه هست اضافه اضافه میشه به فیل شرطش منصوله به چیه؟ جزای شرط زمیر داخل ورده چی میخوره؟ نه. یعنی درست وارد شود چی؟ اضافه شدن شیبه؟ نه یعنی ورده زالی یعنی اون خود به کل به مطلب اضافه شدن اسم به چیزی بود که هم معنای بروشد بیا جمعی بلا یوزاف و اسمون شما بگی اضافه نمی شود اسم به سوی آنچه که با او متحد معنه ریست بلا یوزاف و اسمون به اسم به خودش اضافه نمیشه. درست؟ یعنی مثلا اسم یکی باشه سعید لغمش باشه کرس دوتا یکیه مرادت هم ها دو لفظ برای یک روز یک معنا دارم لذا هیچ موقع ما نمیگیم سعید و سعیدو سعید رو اضافه کنیم به سوی اسمون لمرادی مثلا لیس و حسد دو چی هم؟ الان اون سعید کرز معرفه بودن لیس و حسد چی هم؟ نکره هر دو شیه ما نمیگیم رعی تو لیس و حسده لیس رو اضافه کنیم به چی؟ ولا مصوف اون الا هیچ مصوفی به صفتش اضافه نمیشه نذار لدارون آخرتن رو رجیب کرد ولا صفت اون الا مصوف ها و هیچ مصوفی به صفتش اضافه نمیشه هیچ صفتی هم به مصوفش اضافه ممکنیش ما همیدیو کریم و کریم و رجاله چیه درست؟ چرا؟ چرا اضافه شیه به نفس می‌گی لعنل مضاف به بالمضاف الی او یتخصص میگه برای اینکه مضاف یا کسب تعریف میکنه از مضاف الی یا کسب بگی تخصیص آه؟ و هیچ کس به خودش کسب تعریف و تخصیص بده نمیتونه خودش مصادیق خودش چیزی هیچ کس از پیش دو خود چیزی نشور لأن المضاف یتعرف و بلیموضافی لعه او یتخصص و شیعه لا یتعرف و لا یتخصصص الا به شيء شیعه ایچ موقع معرفه میشه ایچ موقع تخصیص پیدا نمیکنه مگر به چی؟ به غیره خودش به خودش؟ بغیره. و الشيء لا یتعرف و لا یتخصصص الا بغیره. و اولی و تحویر ببر موه من ظاله تو میخواد بگیم مفهول موه من جزده؟ تعویر ببر به وهمندازنده این را اضافه در زمانی که این اضافه شیل به نفس در کلام بسیده بسیده نه و مثال میزنه آزاز سعید و کرزن آزاز سعید و کرزن آزاز مبتدا سعید و کرزن چیه؟ بلنش. این الان دو تا اشکال درش هسته این حاوا سعید و کرزن درش چیه؟ دو تا اشکال هست. اشکال اول اینه که اضافه شیده نفس. اشکال دوم اینه که سعید معرفه است اضافه شده به کرز چی چی تاثیر می‌کنه؟ اگه بگی تخصیص که خودش معرفه است. اگه بگی تعریف تحصیلات. میگه ما میایم سعید رو توجیهش تعریفش می تعریفش وقتی نکره بشه دیگه غیر از کوزه کوز نقد میشه هم کس به تعریف میکنه همین که دیگه غیر از کوزه است اضافه شده نفس دیگه چطور دیگه منظور از یعنی آواصایی نیست منظور از یعنی من اسم. یعنی منبع است یعنی مصحما منظور از سعید یعنی چی؟ من لهو اسم کسی که اسم دارم. یعنی چی؟ یعنی مسمان نامیده شده نامیده شده و اون موقع شامل فقط به یا سعید همی کسان دیدم نامیده شده هست و اگه کردونش مسمان مسمان اضافه میشه به کورس میشه نامیده شده به کورس معرفه میشه و از طرف دیگر هم اضافه شده نفس موسمای نامی رزه سامی رزه خود، ام هم، بچ، همه چیه نهوه هازا سریع رو کنید این موسما هازن نقرد موسمای این نقرد آه. یعنی صاحب بگیم سریع منبول یعنی موسمای یعنی صاحب و اون موقع کس به تعریف میکنه و اضافه شعب نفسم و مسجد جامعه من مثال زدم چی؟ لدار ال آخرت مسجد ال جامعه ظاهرش اینه که از نوع اضافه محصوف به صفت مسجد ال ای مسجد ال یومه جامعه مسجد ال یومه مسجد, مسجد اضافه شده بوده به یوم یوم که مضاف محصوف بوده و محصوف بوده هست شده بگی جامعه صفتش مالی جاش الان به نیابه مسجد اضافه شده به انجام و الله اولا من اصلاح اضافه شده بگیده تیم؟ دریا لدار بوده لدار و ساعت الاخرت لدار حالت الاخرت اول مکان الانجامه میگه یا تقدیر بگیر مسجد روزی که جمع کننده مردم است یا مسجد مکانی که جمع یه دایه یه مزارفانه مزا... ناییی که محصوب بوده تقدیر به گیره به کدوم اول مکان ایز دو جور دردید کرد این دو تا نوع صفحان و جور نوع جرد جور صفحات مشبهتی کورنه قتیفت هم که معلوم دیگم سو بباسه نوع ظاهرش اینه که این از نوع اضافه چیه؟ صفت به محصوفه اول همین کتاب هم داشتیم قوام زل مسائل قوام زل مسائل گفتم دیده از نوع چی؟ ها؟ المسائل بالقوامس این هم بوده قطیف از این میگه اینا چطوری درست کنیم؟ میگه این رو بیا اینطور این کن که جد افقاً افقاً این اضافهش بگو اضافه بیانیگه است اولا این نوع اضافه رو بگو اضافه چیه؟ بیانیگه است و بعد هم بگو جرد صفتیه که عام مقدره یعنی شیع اون جرده بعد شیع جرد میتونه اضافه بشه بگو برای بیان مثل چی؟ مثل خاتم خاتم نسبت به فزده چیه میتونه خاتم فزده باشه میتونه چیه غیر فلزی باشه یعنی زهر شیء جردان شیء کهنه میتونه چیه دیگه مساوی با قطیفه نیست شیء جرد میتونه قطیفه باشه میتونه غیر قطیفه باشه شیء کهنه میتونه لباس باشه میتونه غیر لباس باشه آم میشه دقیقاً بگویینم مثل خاتم که میتونه فلزی باشه میتونه غیر فلزی باشه بعد میان اضافه میکنیم این شیء جرد رو به سوی برای اینکه مشخص کنیم که این شیء کهنه چیست مثل قادم رو که اضافه میکنید به فثه تا اینکه جنس اون قادم چیه شیء کهنه رو اضافه میکنیم به سوی چی به سوی قضیبه تا جنس اون شیء کهنه چه؟ از قوامه فلسفی قوامه نمیگیم منظور از قوامه این مسائله میگیم قوامه یعنی پیچیده‌ها مشکلات مشکلات میتونه مسائل باشه میتونه خیلی مسائل باشه یعنی عشیاء اول قوامز بعد عشیاء قوامز که شد اضافهش میکنیم به مسائل تا اینکه بیان باشه که اشیاء قوامزی م... که ما مفتی نمارت هست بگیم مسائل غیر مسائل پس در اضافه صفت به مصوف چکار میکنیم یعنی اون صفت رو اول آمنش میکنیم با تقدیر یه مصوف مصوف بعد اون رو اضافه میکنیم به ما بعد اضافه بیانی به تقدیر من تا این که اون مبهم مشخص بشه لذا ببین امینی میگه ای شیئون جرد و شیئون من قتیفته نگفت شیئون جرد و قتیفته اضافه کنه چون دیگه معلوم نمیشه اضافهش اضافه چیه به تقدیر من گفته اصلش بوده شیئون جرد و چیزی کندلون تو اون چیز مشخص شده که چیه؟ لونگ اما الان که برگشته گفته شیء و جردن مر من قدیمی بده منو گذاشته مثلا میگه به اضافه بعد از اینکه موصوف رو صفت رو عام می‌کنی و موصوفش که شیء باشه حذف شده بعد از اینکه عامش رو اضافه می‌کنی و اینکه بیان بشه مثل خاطر هم اضافهش می‌کنیم حزتا اینکه نو اشجوزه مشخص شد شیء و جردن میه این وعلم مخواد بگه مطلب چی میخواد جروع جدید مطلب جدید چیه؟ میگه از نسبت به اضافه شدن چند جور یکی ایک شروع میکنه بگفتن؟ که به نه